پس کجا میتوانست برود؟ در کدام شهر دیگری میتوانست زندگی کند؟ آیا میتوانست به خارج از کشور برود؟ به هر حال باید از اینجا میرفت. روز ذره ذره روی بازار چه خزید و گذشت و او در دریای یادها و زخم های این هفت سال شنا کرد. هفت سال، هفت بار چرخیدن زمین به دور خورشید و گردش ماه و زمین به دور هم و ستارگان و سپهر و آخشیگان زمینی چند شبانه روز می شود چند ساعت می شود چند دقیقه می شود چند ثانیه انتظار می شود و چه گذشته بود هرچه بود اکنون گذشته بود آزمایش پایان یافته بود همان گونه که همه چیز همه چیز پایان می یابد فقط فرجام نیکی و بدیمانده بود همه سخنان امویش در آن شب که میان تپه های راه تهران پیش از مرگ به او گفته بود راست بود حتی اینکه گفته بود در نهاد مردم خوبی است راست بود حتی در اینجا در دل تاریکی خانه ملک آرا هم دانه‌های نیکی که امویش گفته بود در نهاد مردم در نهاد ایرانیان است راست بود سرعی خانوم این را به او نشان داده بود کم کم قروب با ابرهای سیاه روی بازارچه فرسوده فرود می آمد و وقتی نم نمک باران هم گرفت جاوید شادی و تراوت خوبی احساس کرد از اتاقک آمد بیرون ایستاد وضع دوخانه و تکیه را نگاه کرد بازارچه زیر ابر و مه تنگ غروب خفته بود هنوز زود بود باران اول سبک و پراکنده بود بعد تند و ریز و پشت سره هم شد. جاوید لب اتاقک نشست و ساعتها باران را تماشا کرد که انگار در چشمش گذر وزیر دفتر را میشست و کنار میگذاشت. آخرهای شب تازه باران بند آمده بود که تصمیم گرفت بلند شود. گرسنه و تشناش هم بود. و تناقض بود که این آخرین شب با میلیون ها گنجی که دستش بود، مجبور بود در یک پستوی تنگ و تاریک و نمناک سر کند، و مثل همیشه با واهمه و ترس و گرسنگی و تشنگی کمین کشد، اما میدانست که دیگر بر نمی گردد، بازارچه و تیمچه و حجره و گمبد و گلدسته به همهشان مرده و زنده ارزانی، بلند شد ایستاد، نفس بلندی کشید، شب را که پس از باران تر و تازه شده بود نگاه کرد، سینهش را خالی کرد، زیر باد سرد پاییزی، زیر آسمانی که داشت صاف می و با ستاره ها و مهداب روشن می شد، با همه چیز محله وزیر دفتر در سال 1309 شمسی هجری ودا و خداحافظی کرد، بدرود، خدا حافظ ما رفتیم خدا حافظ شازده کمال دین ملک آرا با آن دکپز و, و بزرگواری رسمی و از شن لجن گرفته و پوسیدت خدا حافظ لیلا با آن دزدی ها و دروغ ها و زخم زبان هایت خدا حافظ شاه باجی هر جا توی چادر و چاق که هستی خدا حافظ تاج ما خانم، با آن کوه چربی و استخان که این بیبی بی افتنگو با قرقر و نفرت اما دست به سینه ملک آرا به شیر دادن بچه های ملک آرا و منتر سیغه های ملک آرا نشستی، خودت را با باد بزن باد زدی و سرطان پستان گرفتی. خدا حافظ قلوم علی زردن بو، با آن بیزه های قر باد کرده و چوب چماق آلبالوت، خدا حافظ نن احمد با چادر نماز گل با خدا حافظ احمد زاقی با چاقو کشیهات، خدا حافظ محمد بنگی با حقه های وافور و چرس و بنگ و شیرت، مواظب نسل آینده ای ایران باشید. خدا حافظ ابو را به کتوله سورچی با آن شلاق و و با آن چشم و دل گرستند که سیرمونی نداشتی، بلاخره ازرائیل راضی شد جان کثیفت را بگیرد، خدا حافظ میرزا و افقرخان، با آن عرقچین چرک و سیبیل قیتونی و خانه و دکان و محضر و معاملات ملکیت، خداحافظ رقیه بگم و فاطمه بگم که این دوتا خاتون از حرم خراسون تا زیر خاک قبرستون سر قبر آقا دویدید و دویدید و نون و آب و شیره جانتان را فدای کلفتی و دایگی این خانه کردید. خداحافظ دکتر کیو خان دروغ با آن وضو گرفتنها و عطر زدنهاد. خداحافظ دکتر منوچه خانه نوزهد رجاله بیچشم و رو خدا حافظ سورا يا خانم دان گم شده و مخدوش شده نیکی و مهر خدا حافظ فروغ زمان خدا حافظ هوشنگ میرزا خدا حافظ مش خداداد خدا حافظ هما خدا حافظ ژیلای بیچاره که زندگیت را از ثانیه اول با دزدی و پلیدی و دروغ آغاز کردند خدا حافظ عبدالرسول نوکریه کن خدا حافظ هاشم با منقل و وافورت خداحافظ اوسا زبیه با چوب و چاقوی ختنهت خداحافظ اسکرخان با دشنه سربریدن توی میدان اعدام و غیره خداحافظ مش غلام قصاب خداحافظ جواد آقا سنگکی خداحافظ مشع بونه سبزی فروش خداحافظ آقای قریشی خدا حافظ داریوش قریشی، خدا حافظ حاج آیت الله لواسانی، خدا حافظ آقا سید رضا مشیر، خدا حافظ حاج اسماعیل خان معمار، خدا حافظ کوچه چاله هزار، خدا حافظ بازار چیه خدا حافظ گذر مستوفی الممالک، خدا حافظ بازار چیه نایب السلطنه، خدا حافظ تکیه، خدا حافظ خانی ها، خدا حافظ زنی ها خدا حافظ سین زنی ها خدا حافظ کاسه شل زرد خدا حافظ پرچم های سیاه خدا حافظ لوتی انتری برای ختم سوران خدا حافظ آقموس جهود عرق فروش دم در خدا حافظ ریاکاری ها خدا حافظ دروغ ها خدا حافظ زور خدا حافظ خفقان خدا حافظ زیر زمین مطبخ و سیاه چال خدا حافظ آب انبار خداحافظ حضرت اشرف شاهزاد کمال الدین ملک آرا خدا حافظ سرش را بلند کرد زیر آسمان سرزمینی که این همه دوست داشت خودش فراموش شده ترین موجودات بود و وقت حرکت بود پایان کتاب داستان جاوید نویسنده اسماعیل فسیح تاریخ زبط اسفند ماه 1388